یازده نکته طلایی برای اینکه صبحها پر انرژی از خواب بیدار بشین. شاید برای بسیاری از افراد بیدار شدن از خواب و آماده شدن برای رسیدگی به های روزمره چندان خوشایند نباشه اما اشتیاق بیشتر برای صبح از خواب بیدار شدن و استفاده از این مدت زمان فوقالعاده میتونه تأثیر بسزایی بر سلامت و تندرستی ما داشته باشه نتایج تغییرات متعددی نشون داده که کسانی که ها زود از خواب بیدار میشن در مقایسه با دیگران از مزایای گوناگونی بهره مند میشن. از داشتن انرژی مثبت و شادابی بیشتر گرفته تا وزن کمتر. علت این مسئله اینه که انسان به طور کلی صبحها تسلط و کنترل بیشتری بر خودش داره و به دنبال اون صبح تبدیل به زمانی ایدئال برای پیدا کردن عادت سالم میشه. عادتی که میتونند بر سلامتی بدن، ذهن و حتی روابطمون تأثیر مثبت داشته باشند. اما چطور میشه به این هدف رسید و صبحی سرشار از انرژی و نشاط داشت؟ در ادامه این ویدیو به معرفی 11 نکته کاربردی برای رسیدن به این هدف خواهیم پرداخت. 1. از شب قبل همه چیز رو آماده کنید و کارها را به صبح محول نکنید. شب قبل از اینکه که بخوابید لباسا را مرتب کنید. هرچی لازم دارید در کیفتون بذارید و غذایی را که باید سر کار ببرید آماده کنید. به این طریق حداقل بخشی از وظایفتون را انجام دهید و صبح روز بعد استرسه کمتری خواهید داشت. 2. شبها به اندازه کافی استراحت کنید. مدت زمان توصیه شده برای خوابیدن شبانه بین 7 تا 8 ساعت است. صرف نظر از ساعت بیدار شدن از خواب با رعایت این مدت زمان. میتونیم احساس بهتری به هنگام بیدار شدن داشته باشیم. با این تفصیر شبها زود خوابیدن لزوماً که خواب رو بیشتر نمیکنه. اگر عادت دارید به عنوان مثال نیمه شب بخوابید و صبح ساعت 7 بیدار بشید و قصد دارید یک ساعت زودتر بیدار بشید و به این روند عادت کنید به مرور این کار را انجام بدید. اگر شب زودتر از ساعتی که عادت کردید به تخت خواب برید به احتمال زیاد مدتی به صف خیلی خواهید شد تا ساعت معمول خواب شبانهتون، فرا بنابراین بهتره با قدم‌های کوچک شروع کنید هر شب 15 دقیقه زودتر به تخت خواب برید و همین روند رو ادامه بدید تا به زمان دلخواهتون برسید سه استشمام رایحه گلها بعد از بیدار شدن میتونه باعث شادابی و انرژی بیشتری بشه بر اساس بررسی‌های انجام شده در دانشگاه هاروارد کسانی که صبح زمانی که از خواب بیدار میشن گل و گلدون در دیدرسشون باشه شادابی و انرژی بیشتری پیدا خواهند کرد حتی صرف نگاه کردن به شکوفه های زیبای گل ها باعث میشه تا استرا ما کمتر بشه و در طول روز مهربانتر تر و خوش برخورد تر باشیم پیشخانه آشپزخانه یا میز کنار تخت خواب مکان های ایدالی برای قرار دادن گلدون هستند چهار. صبح از فعالیت های تنش دوری کنید اگر به محض بیدار شدن از خواب سراغ اخبار و تلویزیون بریم، روزمون با استراب و تنش شروع خواهد شد. بهتره محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های های داشته باشیم. به عنوان مثال، اینکه حداقل تا سی دقیقه بعد از بیدار شدن به سراغ اخبار یا چک کردن ایمیل‌ها نریم. به جای اون، میتونیم به آهنگ‌های مورد علاقه گوش کنیم. تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه ناکس حاکی از تاثیر قابل ملاحظه آهنگ‌های شاد بر افزایش شادابی و تقویت روحیه بوده. پنج از به تعویق انداختن زمان بیدار شدن خودداری کنید. گاهی اوقات به هنگام شنیدن صدای زنگ هشدار تلفن هوشمند یا ساعت زنگدار اون رو به تعویق می‌اندازیم تا کمی بیشتر استراحت کنیم. این رویکرد مناسبی نیست. اگر همون بار اول بیدار بشیم انرژی بیشتری خواهیم داشت. توصیه میشه ساعت زنگدار رو جایی دور از دسترس قرار بدید تا امکان به طریق انداختن هوش اون وجود نداشته باشه شش به هنگام بیدار شدن کمی آب به همراه لیمو بنوشید هفت یا هشت ساعتی که به طور میانگین صرف خوابیدن میشه باعث کاهش آب بدن و نیاز مجدده اون به آب رسانی میشه نوشیدن آب به همراه کمی لیمو که در آن چکانده شده باشد انتخاب هوشمندانه برای تامین آب مورد نیاز بدن است این نوشیدنی کمی انرژی زاست و باعث احساس سیری میشه. به علاوه چشیدن تم لیمو باعث میشه تا بدن نیازی به خوردن دونات یا شیرینی نداشته باشیم. هفت سعی کنید به هنگام بیدار شدن در معرض نور قرار بگیرید برای تامین روشنایی مورد نیاز اتاق که نورگیر نیست میشه از چراغ رومیزی استفاده کرد. قرار گرفتن در معرض روشنایی باعث توقف ترشح هورمون ملاتونین که مرتبط با خوابه میشه و پس از 15 دقیقه خواب‌آلودگی صبح به طور قابل ملاحظه ای کمتر میشه. برای کاهش افسردگی هم از نوردرمانی استفاده میشه. لامپ رو جایی بذارید که از روی تخت خواب دستتون به اون برسه و زمانی که در حال مسواک زدن هستید اون رو روشن کنید. 8 به هنگام بیدار شدن کمی فعالیت داشته باشید. تحقیقات نشون داده کسانی که به هنگام بیدار شدن کمی فعالیت می کنن، توانایی بیشتری برای طرح برنامه منظم خواب و بیداری روزانه خواهند داشت. منظور از فعالیت ورزش طاقت فرسان نیست. کافی ده دقیقه رو به قدم زدن یا انجام حرکات کششی اختصاص بدیم. این کار باعث سریعتر شدن جریان خون و کاهش احساس خواب آلودگی میشه no. اتاق خواب رو به هنگام خوابیدن کاملا تاریک کنید. برای اینکه خواب به سطح کیفی مطلوبی برسه، اتاق خواب باید تاریک تاریک باشه. استفاده از چشمند برای خواب میتونه انتخاب ایدئالی باشه. استفاده از پرده های تر برای اتاق خواب هم توصیه دیگه ایه که میشه برای این منظور استفاده کرد. 10. برنامه روزانه منظمی برای ساعت خواب و بیداری داشته باشید. اختصاص دادن ساعتی مشخص برای خوابیدن و بیدار شدن به صورت روزانه و پایبند ماندن به آن بهترین راه برای متعادل نگه داشتن ساعت بدنه با این کار نوعی چرخه منظم برای خوابمون به وجود میاریم که باعث میشه سایر کنشها و واکنش های بدن در دیگر ساعت شبانه روز با سهولت بیشتری انجام بگیره 11 تا حد امکان محیطی رو که در اون می آرام و ساکت نگه دارید سرا صدای محیطی مثل رفت و آمد خود روها به خواب رفتن را بسیار دشوار می کنه. دستگاه پخش صدا یا نویز سفید می انتخاب مناسبی برای حل این مسئله باشه. پخش مداوم صداهای آرامش بخشی نظیر جریان رودخونه یا حتی بازگذاشتن دائم پنکه یا چیزی شبیه به اون هم می تونه به خونسا کردن صداهای مزاحم کمک کنه. و در میان مواردی که عنوان شدن، داشتن برنامه روزانه منظم و مشخص برای ساعت خواب و بیداری در کنار اختصاص دادن 7 یا 8 ساعت برای استراحت شبانه حائز اهمیت بیشتریه برای اونکه صبح‌ها با انرژی و شادابی بیشتری از خواب بیدار بشیم به خواب عمیق و کافی نیاز خواهیم داشت با استفاده از موارد و توصیح های دیگه میتونید جهت بهبود کیفیت خواب تلاش کنید اگر با استفاده از تجربه شخصی یا مطالعات خود به راهکار یا توصیه غیر از موارد یاد شده رسیدید، خوشحال میشیم. اگر در قسمت کامنت ها تجربه خود رو در این خصوص با ما به اشتراک بگذارید.